بسم الله الرحمن الرحيم درس شاردهم لا النافية للجنس لا ينافية جنس نودهافت ما هو حكم لا النافية للجنس حكم لا ينافية جنس جه هست نودهافت ما يشترط في عملها چه چيزي در عمل شرط هست نودنوه كم نوعا اسم لا اسم لا برچنو هست صد ما هوا حکم اسم الله حکم اسم الله چه هست؟ صد یک متا یحذف خبر الله چه زمانی خبر الله حصف می شود؟ صد و دو ماذا یجوزو فی نعت اسم الله چه چیزی جایز است در نعت اسم الله در صفت اسم الله چه چیزی جایزه؟ صد سه ما هو حكم لا إذا تكررت حكم لا تهست زماني قد تكرار شد هنا سؤالات يهست كدريم درس باسخ مدهت نود هفت لا نافية للجنس تعمل عمل إنه أي أنها تنسب الاسم وترفع الخبرة نحو لا رجل في الداره مقل لا نافية الجنس عمل إنه أنجمده يعني اسم رو منصوب می کند و خبر را مرفوم می کند مانند لا رجل فدار لا میگیم لا نفی جنس رجل اسمش مبنی بر فتحه فداری جارو مجرور یا میگیم خودش خبره یا اینکه متعلق به خبر چیه محزوفه متعلق به خبره یعنی در واقع چونینه لا رجل موجودون فدار فائدة مجلس نافية للجنس لأنها تنفي بدخولها حقيقة نكرة كلها، حقيقة نكرة كلها. فإذا قلت لا رجل في الدار نفيت جنس الرجال من الدار حتى لا يجوز أن يقال بل رجلانی خلافاً للا الَّذِي تَعْمَلُ عَمَلَ لَيْسَه فَإِنَّهُ يَصِحُ بَعْدَهَا بَلْ رَجُلَانِي میگه نامیده شده است لا نفی جنس زیرا با داخل شدنش حقیقت نکره رو به شکل کلی چی کار میکند نفی میکند وقتی که تو میگوی لا رجل فی الدار دار تو جنس مرد رو از خونه کلن چکار میکنی؟ نفی کنی. یعنی هیچ گونه هم. چون این جنس مردی در خونه وجود ندارد دیگه بعد از این نمیتونی بگی لا رجل داری بل رجلانی آه در خونه مردی وجود ندارد بلکه دوتا وجود دارد اینجوری نمیتونی بگی چرا؟ چون لای نفی جنس جنس مرد رو چکار میکنه؟ خود در خونه اصلا مردی وجود ندارد میگه برخلاف لا لا عمل لیس رو آوردی مثلا لا رجوله لا رجولان فدّاری اونجا میتونی بگی لا بل رجولانی مردی در خونه وجود ندارد بلکه دو مرد وجود داره چون تو یک مرد وجود ش با اون لاش کار میکنی نافی میکنی نود هشت تعمل لا عمل این نب خمسه شرط ولی این لا برای اینکه امل ان رو انجام بده یعنی اسم منسوب بکنه و خبر مرفوع پنج شرط داره ان تكون نافیه للجنس نصا یعنی نفی عام میگه شرط اولش اینه که نفی جنس بکنه نفی عام نفی چی یعنی فقط اون یک نفر را نفی نکنه فقط یک نفر را بلکه کلا امومن اون جنس رو چی کار بکنه دو ان اسمها اسموها و خبروها نکرتینی شرط دومش هم اسمش و هم خبرش چی باشن مانند لا رجل حاضرون لا رجل هم اسم نکره هست و هم خبر چیه نکره هست سی ان یکون اسموها متصلن بها اسمش و به بلا باشه یعنی بینشون فاصله نه آمده باشه الا یتقدم خبرها علیها خبرش بر خود این لا مقدم نباشه الا يدخل عليها جارون؟ حرف جار حرف جاری هم بر این لا وارد نشده باشه مانند ماننده لا کوا کوا سات مانند این مثال یعنی در این مثال ببین لا این مثالی هست برای درست بودن عمل کردن لا این مثال برای چی نیست که حرف جر برش وارد نشه اگر برای سر تو بلا زادیم اینجا حرف جر سرش وارد شده پس این پنشرت رو بیان کرد بعد از این پنشرت مثال زد گفت لا کوک ما مانند این مثال هر پنشرت در شرسد ست هیچ ای، درخشان طولو کننده نیست خب اینجا هر دوتا نکره هستن ترتیب رایت شده فاصلهی نومده تر پن شرط هر پن شرط فواعد اسملا مبنیون مقه علالفتح یه ای رو بیان میکنه میگه اسملا مبنیون مقه الفتح وَكِلَهُمَا في محل رفع على الابتداء. بگه اسم الله همراه با الله ببین اسم الله همراه با لا اینا مبنی بر فتح هند مبنی بر و هر دوتاشون محلن مرفوع هند و مبتده هستند هر دوتاشون چی هستند؟ محلن مرفوعند مبتده است باقی که دوتایی ناروش کردیم بررسی کردیم تکی نا هر دوتا رو با هم دو, دو لایجوزن یتقدم خبروها او غیروه على اسمها فایده دوم اینکه میگه جایز نیست که خبرش یا چیزی دیگر بر اسم آن چی شود مقدم شود و هذا هو المراد من اتصال اسمها به منظور از متصل بودن اسم الله بالا این چیز بود که یعنی چیزی قبل از اسمش نیامده باشد باره. فلا تقول درست نیست که ما بگیم لا فیداری رجوله چون اینجا بین لا و اسمش چی اومد فاصله اومد چی اومد بله فیدار اومد نه باید کنجوری بود لا رجوله فدار لا رجوله این هم درست نیست لا اندنا رجوله مقیمون درست اینجا اندنا خبر نیست اونجا در مثال اول لا داری رجله خبر اول اومده بود به خاطر درست نیست باید در لای نفی جنس اول اسمش بیاد اول چیش بیاد در مثال دوم دو قبل از اسم و قبل از خبر ظرف اومده این هم درست نیست لا اندنا رجل مقیم اما اگر بگیم لا رجل مقیمون این درسته لا رجل مقیم اندنا این هم چیه درست ولنا بعد ما بين الله واسم الشيء بياري فاصله بياري فاذا انفصل اسمها عنها الغيت ووجب تكرارها عند العطف عليه بيجي زماني ك جدا شد اسمش ازود يعني فاصلة ومت بين الله وبينتي شيء اسمش بيجي الغا بش يعني عمل انجاب وواجب مش التكرار الشقامه عطف یعنی بعد این لا دوباره چی میشه؟ مانند لافداری رجولون ببین اینجا دیگه فاصله اومد نه؟ ولا امرأتون لافداری رجولون ولا امرأتون ببینیم که عملی انجام ببین رجولون رو منصوب منسوبه؟ نه دیگه عمل انجام نداده و اذا دخل علیه حرف جر یا بطول عملها و یعرب ما بعدها مجرورا به و زمانی که داخل شد آن حرف جری عملش چی می شود؟ باطل می شود و ما بعدش مجرور میشه و ما بعدش چی می شود؟ مانند سر تو بلا زادین که اینجا روی لا حرف جر با اومده و ما بعدش هم ببینیم که مجرور هست ما بعدش چی سه لا فرق بین لا النافية للجنس ولا النافية للوحدة أي العاملة عمل ليس إلا إذا كان اسمها مفردا ميقى فايدة السفن بيقى فرق بين لا ينافي جنس ولا يشبيه بليس وجود نادارد مقر زمانك اسم ناشي باشي مفرد باشي فإذا عاملة في المثنى أو المجموع احتمال ان یکون كل من هما لنفی الجنزی او لنفی الاثنینی او الجماعاتی بگه زمانی که این دو طالع عمل کردن در مسننا در جمع يعني یعنی روی مسننا یا روی جمع اومده بودند احتمال دارد که هر یکی از این دو طالع لای نفی جنس باشد یا لای شبیه به ليس باشد فقط زمانی که روی مفرد بيان با هم دیگه چه فرق دارا فإذا قلت توزيع مدة، وقتك توقفتي لا رجلاني أو رجلين في الدار، آه؟ لا رجلاني في الدار، يا لا رجلين في الدار. إنجروا مصندة جو مدة، روت يومدة؟ مصنة. ميجي احتمل أن تكون نافية جنس الرجال أو نافية الاثنين فقط دون الواحد والجماعة. ميجي إنجا حردت لا روما بتلوم احتمال مدة. بگیم که این لا لایه نفی جنسه یا لا شبیه به لیسه هست که فقط دو نفر رو نفی میکنه چون اگر لا شبیه به لیسه باشه فقط وجود چند نفر نفی میکنه؟ دو نفر ببین اگر ما اینجا لا رو لایه نفی جنس میگیریم لا رجل این دار دیگه کلا وجود شو نفی میکنه ولی اگر لایه شبیه به لحسش بگیریم اون موقع وجود دو نفر رو چکار میکنه، اما وجود یک نفر یا وجود بیشتر از دو نفر رو نافی نمیکنه. و کذالک پس زمانی که بر مصانبیات فرقی نداره بین لا نفی جز و لای شبیه به همچنین زمان که روی جمع بیاد ماننده لا رجالون او لا رجال فید اینجا چرا لا رجالون لا رجال؟ تون اگر لای شبیه به لیسه باشه رجالو میشه دیگه اگر لای نفی جنس باشه لا رجاله میشه نه میگه هر دو تا رو میشه احتمال گرفت به این خاطر هر دو اعراب آورده هر دو اعراب چکار کرده طول میگه زمانی که بر مصنع یا جنبیات فرقی نداره میگه احتمال ان تكون نافیت جنس رجال او نافیه الجماعت فقط دون الاثنین الواحد احتمال داره که نفی جنس مردان بکنه یا نفی جنبودن فقط مكون نكدو نفرو يك نفرو فالفرق بينهما اذا متأتن عند دافراد دا الاسم فقط فالفرق بينهما اذا متأتن عند دافراد دا الاسم فقط بيكي بس فرق فقط زماني اسم چه باشه مفرد باشه فقط چه باشه نوادنوه اسم لا ثلاثة انواع اسم لا بر مفرد مضاف و مشبه بالمضاف این اسم لا یا مفرد است یا مضاف است یا شبیه مضاف البته منظور از مفرد در این قاعده منظور یعنی مضاف و شبه مضاف نباشه نه مسننه و جم نه چی؟ چون اگه مسننه و جمع هم بود اینجا ما بهش بگیم مفرد دیگه بشم نمیگیم مضاف و شبه مضاف بشم بگیم چی؟ لا رجال فی الدار ما اینجا مضاف نیست شمح مضاف نیست مفرده چیه؟ چون ما مفردی داریم که در مقابل مسنع و جمع قرار گیره و مفردی داریم که در مقابل مضاف و شمح مضاف قرار میگیره اینجا در این قاده منظورش از مفرد همینه فائده المراد بالمشبه بالمضاف پس اسم لا یا مفرده یا مضاف یا مشبه بالمضاف خوش شبیه به مضاف توضیح میده چون مفرد و مضاف دیگه واضح میگه مراد به مشبه بالمضاف کله ما تعلق به ما بعده به عمل او عطف میگه منظور از شبه مضاف شبیه مضاف هر آنچه که به ما بعدش تعلق میگیره یعنی اگر این کلمه در ما بعدش عمل کرد یا عطف داده شد و موقع میگن شبیه به مضاف مثال بر معنا لا راکبا فرسد فی طریقه اینجا راکبا مفرد یعنی مضاف شبه مضاف چی میگم؟ راکبن اینجا شبیه به مضافه چرا؟ تو در ما بعدش عمل کرده فرسن رو منصوب کرده فرسن رو چی کرده؟ بله سواری نیست اسب را در راه لا ثلاثت و ثلاثین قلبن اندره سیوس و قلم نزد ما نیست خب اینجا ثلاثت میبینیم شبیه به مضافه چون عطف داده شده چون چی داده شده؟ بله پس منظور از شبه مضاف توضیح داد حالا در شماره صد کتاب میگه اضاکان اسم لا مفردن چرا این تقسیم بندی رو کرد یا مفرده یا مضاف؟ یا شبه مضاف؟ به خاطر این که اعرابشون با هم فرق داره یعنی اگر مفرد باشه فرق داره با زمانی که مسنا یا جمع باشه اضاکان اسم لا مفردنه زمانی که اسم لا مفرد باشه یعنی مضاف و شبه مضاف نباشه یبنا علاماتا یون به مبنی میشه بر همون حرکتی که در حالت نصب میگیره در حالت منصوب شدن اون کلمه اون کلمه مفرد چه حرکتی رو میگرفت اینجا مبنی بر همون علامت میشه خودش مثالا رو آورده فایقال مانند لا رجل فی اینجا اسم لا مفرد است میگیم رجلا اسم لا مبدی بر فتح. چون اگر رجل اسم مفردی اگر منصوب می شود فتحه می پس اینجا میگیم مبنی بر فتحه میگیم مبنی بر چه در به سال بعدی لا الله این اندنا اسم لا مفرد است یعنی مضاف و مضاف نیست اما مصنعه ها زمانی که منصوب میشن یا می گیرن پس اینجا میگیم لا режلینی رجل رجلینی اسم لا مبنی یا مبنی بر چی؟ یا در مثال بعدی لا رجال ایندکم جمع مکسره. جمع مکسر در حالت نصف میگیره. پس میگیم رجال مبنی بر چیه؟ بر فتح. مبنی بر؟ فتح. لا مسلمین فی الجاهلیتی مسلمانانی وجود ندارند. وجود ندارند مسلمانانی در جاهلیت. اینجا هم بگیم که مسلمی اسم لا مبنی بر یا و اذا کارن مضافن او مشبهن به پس زمانی که مفرد باشه ببین اینجوری ترکیبش میکرین نگیم لا رجل فی اداری لا نفی جنس رجل اسم لا لفظا مبنی بر فتحه ولی محلن منصوبه محلن چیه؟ چون اسمشو منصوب میکرد خبرشو چکار میکرد؟ مرفوم میکرد خبرش هم لا موجود موجودون فدار که قبلنا اینو خوندیم حصف میشه چی میشه؟ یکی از جایی که خبر حصف میشد اونجا دیگه توضیح رو خوندیم در بحث خبر اما با اضاکان مضافن ها مشبهن به زمانی که خبر اسم مضاف بود یا مشبهه به مضاف بود شبیه به مضاف بود واجب نسبه لفظن اینجا دیگه واجبه که لفظن منصول بشه لفظن چه بشه؟ مانند الله خادم مائدت حاضر. اینجا خادم که اسم الله مضافه به مائده است، نیست خدمت گزار ای حاضر. خب اینجا خادم از اون جایی که مضافه پس نمیگیم دیگه مبنی بر فتح چی میگیم؟ بگیم خادم اسم الله منصوب علامت نصبش فتح چون این کلمه منصوب که بشه فتح میگیر دیگه پس میگیم علامت نصبش چه؟ فتح حاضران هم خبرش ما تیر هم که مضافون ایلی لا منصبنا علی العلمی فی المکتبی خوب اینجا هم منسبن شبیه به مضافه چرا؟ چون در ما بعدش عمل داره در ما بعدش چی داره؟ پس باله پس میگیم منصوبه علامت نسرش هم چی هست؟ فائدة قد يعطى اسم لا المفرد حكم المضاف في الإعراب ونزع التنوين ونحوه مصرحاً معه باللام كقولهم لا أبى له ولا يدي لك فتجأل اللام ومجرورها في مثل هذه الحال صفةً لا خبرن و یکون الخبر محروفن در این فایده میخواد بگه گاهی داده میشه اسم لای مفرد اسم لای چی؟ مفرد حکم مضافو در ایراب و در برداشتن تنوینش در چیش؟ مضاف دیگه تنوین نمیگیره نه؟ و امثال این چیزا ولی همراه با اون لام ذکر میشه لام صراحتاً چی میشه؟ صریحاً ذکر میشه مانند لا عبا لهو که اینجا لا صریحاً چه شده؟ ذکر شده خب اینجا عبا مفرد دیگه ولی باوجود اینکه مفرد مفرده حکم مضافه داره حکم چی رو داره؟ بله اینجا دیگه ما نمیگیم که عبا مبلیه بلکه میگیم منصوبه علامت نصفش چیه؟ الف چون سته دیگه هرگاه منصوب بشن الف میگیرن چی میگیرن؟ الف میگیرن پس لا لای نفی جنس عبا اسمش هست علامت نسمش الف لهو هم نه این لهو اینجا صفته و خبر نیست خبرش محصوفه خبرش چیه؟ یعنی لا ابا لهو حاضرون مثلا یا موجودون پدرش حاضر نیست موجود نیست لا یده لک که یده اسم لا منصوب علامت نصبش یا هست علامت نصبش چه هست؟ چون مسنناها منصوب چی میگرن؟ یا میگیرن مثل رجولینی یدینی کتابینی و هو مقصور فی المفرداتی على الاب والاخ الشاعر در مفردها بر دو کلمه ابو اخ مقصور هست این مساله مانند سخن شاعر که بیگه من لا اخاله کساء الى الهجاء بغير صلاح بیگه به برادرت بچس برادر تو رو داشته باش همان کسی که برادر ندارد به مانند کسی است که تلاش میکند به جنگ ولی بدون صلاح خوب اینجا من لا لهو شاهد ما این قسمت لا اخا له بعد وشائع في المثنى والمجموع قياسا فيهما ودر مثنى و در مسنع جمع شایع هست قياس برندو كلمة يعني أخو أب فيقال ما ماننده ثوب لا كم له لباسي كم إن جاي لباسي إن جاي قسمته إن شو رشو بشمية چي عرسي بال عرسي نار بال خب لا كم له كي إن جاي كنين هست اسمش هست و علامت ناسمش هم چیه؟ یا هست چون یا یاولا کاتبی لیل که اینجا هم کاتبی اسم الله هست مبنی چی بگم؟ منصوب هست علامت ناسمش یا هست علامت ناسمش چی هست؟ چون جمع مذکره بعد مثل چی شده؟ دیگه مثل مضاف باشه بر رفتار شده نوشت هست شده نوشته شده اونجا هم کمبنه نوشته شده اینجا هم کاتیبنه نوشته شده هست شده. اما متوجه باش که بگی اگر ارید جعل اللامی و مجرورها خبرن وجب ای یقان لا ابله و لا یدینی لکه اینجا یک ای رو او سامچان یادآور میشه بگه ببین در این مسائلی که ما در این فایده توضیح دادیم این زمانی بود که ما اینا رو مثل مضاف می گرفتیم حکم چی اینا رو می دادیم؟ حکم مضاف و اونجا که ما اینا رو حکم مضاف میدادیم، اینجا جار و مجرور صفت بودند دیگه خبر نبودند خبر اما اگر ما این جار و مجرور رو میتونیم خبر حساب کنیم می مثلا بگیم لا ابله پدر ندارد این شد خبرش؟ اگر ما اینا رو خبر بگیریم اون موقع برخورده ما با اسم الله دیگه مثل مضاف نمیشه مثل مفرد میشه مثل چی میشه؟ مفرد. بله مبلیش میکنیم اون موقع چیکارش میکنیم؟ مبلی بر علامت نصبش اون موقع میگیم لا عبالهو که اینجا میگیم عبال اسم الله و مبری بر چی؟ بر فتحه دیگه نمیگیم لا عبالهو چون اگر بگیم لا عبالهو ما مبنی مبنیش نکردیم منصوبش کردیم چیکارش کردیم؟ یا لا یده اینی لکه اینجا هم بر یای مبری بر چیه؟ ولکه هم خبرش هو یا خبرش مستقیمن یا متعلق به خبره محصوفش در هر صورت ولی صفت و حالا مجرم صدو یک یک سروحف خبری لا داکان معلومن در شماره صد ده میگه میگه زیاد حصف خبر لا زیاد حف میشه زیاد هست حف خبر لا زمانی که البتون معلوم باشه زمانی که چه باشه مانند لا بث عربان مثلا میگن لابحث مشکلی نیست در واقع جمله تونولین لابحث علک خبر رو چیکار میکنن؟ حس میکنن. و اكثر ما يحذفونه ما الا و اكثر جاي كي اينو دارن حذف مكنن اين خبرو همراه با الا مانند لا اله موجودون الا الله ديگه موجودون كي خبرش كارش ميكنن حذفش ميكنن ا بار زادودو اذا دعته اسم لا المفرد نقطه قشنگی میده ما اسم الله رو خوندیم لا رجل مقیمون لا رجل حالا گر ما اومدیم برای من رجل صفتی رو آوردیم اصلا گفتیم لا رجل ظریفون موجودون لا رجل آقلون موجودون نا تی برای اسم چکار کردیم آوردیم میگه زمانی که ناعت شد اسم الله مفردی با مفرد ديگر متصل به و اون مفرد يعني اون نعت متصل به اون اسمه فاصله بينشون ده يومده بوده جازه في النعت البناء على الفتح وجاز النصب الناس و الرفع انجاد در این نعت سي چيز جائزه سي اعراب در این نعت كميشه؟ متونين مبني برفتحش کنين؟ میتونیم منصوبش کنیم و میتونیم دیکی چی کارش کنیم مرفو یعنی ما اینجوری میتونیم بگیم لا رجل ذریف اندنا لا رجل ذریفن اندنا لا رجل ذریفون اندنا پس هرگاه اسم لای نفی جنس نعتی برا شاورده شد و مفرد بود و متصل بود سه چیز میشه جایزه. مبنی من دو منصوب سه مبنی بودنش بر فتح چیه؟ مبنی بودنش از این زاویه هست که میگه مرکب شده ترکیب شده با اسم لا و حکم یک کلمه رو دارند این وجود داره دیگه در زبان در زبان آراد یعنی آقا لا رجوله ذریفه رجولا و ذریفه حق به یک کلمه رو دارند همانطوری که رجولا پس مبلی بر فتح این هم چی میشه؟ مبلی بر فتح میشه خوب نصفش چرا جایزه؟ چون ما گفتیم اسم لایه نفی جنس محلن چیه؟ مرسومه موقعی ما میگیم لا رجوله بگیم رجوله اسم لا لفظن ممنی برفت ولی محلن چیه؟ منصوبه پس صفت شما میبین اعراب محلو به صفتش هم خودش محلن منصوبه صفتش رو بیاریم چکار می‌کنیم منصوب می‌کنیم اعراب محلو بهش میدیم چرا مرف... مرفوبودنش از کجا جایزه بله مرفوبودنش از اینجا که قبلا گفت لا و لا و اسمش ولو این که دیگه ای باشه میگه لا و اسمش با هم با هم دیگه مبتدا قرار میریفتن و محلن مرفوعن و محلن کین چرا اینجا ما میتونیم رو مرفوع کنیم میگه اعراب لا و اسمو با همی بشویدیم همون رفعه بشویدیم پس هر سعراب داره چی و بی برفت جایزه نصفش جایزه رفعش هم وقفت شراؤه بعد. أما وإذا فصل النعت، اما زمان كنت بين اسم وبين نعت فاصلة أومت، بين اسم وبين نعت شو مات؟ فاصلة أومت. إجى فقط ناس مراخ جائزا. إجدى جا كم بدي برفت نعيش؟ شراؤه؟ شو؟ إنه در حكم كلمة ليس، أكيد در حكم كلمة باشان. ونماق ما أنا بترى بين سطح ياري، فاصلة ياري. ما وجهك بين إن اسم الله و بین نعتش فاصله اومده دیگه ما اون توج از اون زاویه نگاه نمیتونیم بکنیم که بکنی در حکم یک کلمه هست فقط دو ایراب باقی مانده رو میتونیم بشون بدیم میگه زمانی که فاصله اومد بین نعت و بین اسم الله اینجا فقط نصب و رف فقط جایزند ماننده لا رجل اندنا ذریفن یا لا رجل اندنا ذریفون که توضیح شد رد شد ويمتنع البناء على الفتح التركيب مع الفصل خودش توزيد ذلك بيجي مبني بودا برفتح ممتنع هسه كل باوجود فاصلة تركيب ممكن ليست أما إذا كان اسم لا مضافا أو مشابها به فيجوز في النعت أن نسمه والرفع سواء فصلا النعت أم لم يفصل أما زمانك اسم الله مضاف باشه یا شبیه به مضاف باشه زمانی که مفرد بود زمانی که مفرد بود, بود دو حالتو داشت که خوندی بش یا فاصله بود یا فاصله فاصله نبود سیارم جایز بود فاصله بود دوتا رفو بش. حالا میگه اگر چنانچه این اسم مزاف مضاف بود یا شبیه به مضاف بود بعدش براش صفت آورده بودن میگه فیجوز و فی نصب و رفت اینجا دیگه هم نصب و هم رفت چیه؟ جائزه فرقی نمی کنی که فاصله آمده باشد تو فاصله آمده نباشه. در هر دو صورت فقط باله فقط رفت و نصب جائزه مانده لا غلام رجلن جمیلن حاضرون لا غلام رجلن جمیلون حاضرون ببین غلام اسم الله هست ولی مضاف به رجل هست جمیلا صفتش هست در جمیلا ما میتونیم دو اعراب بیاریم میتونیم منصوبش کنیم یعنی به محل غلام اعرابش میدیم میگیم جمیلا لا و میتونیم به محل لا غلامه هر دو تا اعرابشو بدیم همون مرفوعه همون چیه مبتدا حسب بالا شبه مضاف هم کنیم لا صاحب علم فی المدینه بارعا او بارع ما بيتني بيگيم لا صاحب علم في المدينه بارعا ها بارع عن كثافته صاحبها است خوب بيتني منسوبش كليم او بيتني تشهش كليم مرفوعش كليم عطف على اسم لا جاز في المعطوف خوب إن صفه بود توزيعش داشت اگر ما براي اسم لا وصف ميارديم دو حالت داشت يا بافراد بود يا اضافه شده مضاف اگر مفرد بود یا فاصله اومده بود یا نیومده بود آ؟ خب الان داره میگه و اذا اتف على اسم الله جواز في المعطوف النصب زمانی که عطف همچین داده شده بود بر اسم الله اینجا فقط دو اعراب جایزه یا نصب یا رفع مانند رجل و غلاما که اینجا غلام معطوف به رجل هست به اسم الله هست معطوف به چاست در معروف دو اراب جایزه ما میتونیم بگیم لا رجل و غلامان اندنا میتونیم بگیم لا رجل و غلامان اندنا چرا؟ اگر منصوبش کنیم ما عطفش دادیم به محل رجل بیاییم به محل رجل و اما اگر معرفیش کنیم و محل لا و اسم لا و رجل هردو تا عطفش دادیم که گفتیم لا همراه با اسمش با هم مبتدا بیشن با هم چی بیشن؟ بله سدوسه و کان اسمها نکرتا اذا تکررت لا ببین؟ در شم قاعده شماره سدوسه میگه زمانی که لا تکرار شد زمانی که لا تی شد؟ و کان اسمها نکرتن متصلا بها و اسم ان نکره بود زمانی که لان چی شد؟ تکرار شد و اسمان نکره بود متصله به آن بود جاز اعمال المکررتین اینجا عمل کردن هر دلال تکرار شده جائز یعنی این دو لات عمل انجام بدن این چیه؟ بله مانند لا حول ولا قوت عمل انجام دادن منصوب کردن افتار کردن؟ ممنی بر نصف کردن پس جایز است که عمل بکنند و جاز الغاؤهما جمین و جائز است که الگا از عمل عمل انجام؟ ماننده لا حول ولا قوتون الا بالله اینجا عملی انجام؟ اگر عمل میکردند که باید نکرار و منصوب میکردند مبنی برفتش میکردند بله و جاز اعمال احداهما و الگاو حالت سبب یعنی که یکی از این دوتا عمل میکند و دیگری عمل یعنی یکی از دو تا عمل انجام بده و دیگر ملغا بشه لای دیگر, دیگر چیشه؟ مانند بگیم لا رجل فیداری ولا امرأتون که لای اولی عمل کرده ولی لای دومی عملی نکرده یا اولی رو عمل انجام ندهد دومی انجام دهد مانند لا رجل فیداری ولا امرأتا پس زمانی که لا تکرار بشه این حالاتو داره اعمال هر دوتا الغای هر دوتا اعمال یکی و الغای دیگری میگه ویذا کان المعتوف و اسم الله معرفتن خواب اینجا نقطه دیگری رو داری میگه. میگه زمانی کن چیزی که معتوف شده بود بر اسم الله اون معرفه بود حالا اون مال رو توضیح داد. حالا میگه زمانی کن چیزی که معتوف شده بود بر اسم الله معرفه بود چی بود؟ وجب رفع المعرفتی سوان تکررد لا اولم تکرر اینجا بگه واجب که معرفه مرفو بشه حالا چی تکرار شده باشد الله چی تکرار باید باید اینجا معرفه مرفو بشه باید معرفه چی باشه مانند الله رجله ولا زیدون فیدار زیدون از جای که معرفه هست معرفوه بگو لا نمیتونه منسوبش کنه نمیتونه چیکارش کنه یا ولا رجل و ایجاب لا تکرار نشده باز هم با معرفه ما چیه مرفوع خب توضیح بده این حالات این مرفوع بودن و منسوب بودن اینا رو توضیح بده چرا الان توضیح میده در فواید میگه میگه لا اجوزو فی غیر ضرورتی نسب الثانی معرف الاول میگه در غیر از ضرورت در غیر از ضرورت جائز نیست نسب دومی دو نصب چی دومی همراه با رفع اول یعنی اینکه تو اولی رو مرفوع کنی دومی دو رو بیای منسوب کنی این جایست نیست متوجه شدید اینو اولی رو مرفو کنی و دومی رو منصوب کنی این جایست نیست نا همین مثال مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله هر تا اینجا منصوب بودن لا حول ولا قوة إلا بالله هر تا چی بودن لا رجل بال میگه اگر اولی رو منسوب اولی رو مرفوع کردی در غیر الزرورت ضرورت دومی رو دیگه منصوب نکن مثلا چیزی میگه میگه لا يجوز غیر الضروره نصب الثاني مع الاول در غیر الزرورت ضرورت جایز نیست که تو دومی رو منصوب کنی در حالی که اولی چیه مرفوعه چرا لعن نسبه انما يكون الاطفو على منصوب لفظن او محلن و هو مفقود انها چرا میگه تو نمیتونی اولی مرفوع دوو رو منصوب کنی میگه به این که در این بحثا در بحث در بحث بال. بله. در این قاعده تکرار الله در این قاعده چی؟ میگه چرا جائز نیست؟ میگه زیرا تو موقعی که بیایی اینو می‌دی بر مرفوع خب اون مرفوعه تو یا اینو موقعی که می خواهی منصوبش کنی لانه نسبه این نمایه کل العطف ولا منصوب لفظن او محلن نسب بودن این بخاطر این که یا منصوب بشه عطف داده بشه بر یک, م... بر یک کلمه منصوبی که یا لفظن منصوب باشه یا محلن در حالی که این مرفوعه و اصلا منصوب نیست نه لفظن و نه محلن چطوره تو میای دومی رو منصوب میکنی؟ موقعی که اولی مرفوعه نه محلا منصوبه و نه لفظن پس تو چطوریم یای دفغی را منصوب میکنی اولی موقعی که مرفوعه نه لفظن منصوبه و نه محلن تو چطور یای دفغی چکار میکنی منصوب میکنی این داره علت شو بیان میکنه و لا یجوز و نسبه همه جمیعا لامتناء نسب الاولی لفظن. میگه هر دوتا رو هم نمیتونی منصوب کنی هر دوتار رو نمیتونی چکار کنی، منسوب کنی. یعنی تو نمیتونی بگی لا حولن ولا قوة إلا بالله. نمیتونی بگی لا حولن ولا قوة إلا بالله. بله چرا گفت نمیتونی بگی لا و لا قوه تا به خاطر که تو که میخوای دوهمی رو منصوب کنی اولیت مرفوعه میخوای چرا میخوای از چرا طریقی میخوای منصوبش کنی اولیت نه لفظا منصوبه و نه محلا تو چرا میخوای دوهمی رو چکار کنی منصوب کنی این یک دو میگه هر دوتا رو هم نمیتونی منسوب کنی هر تا رو هم نمیتونی چکار کنی؟ تو میخوای اولی رو چرا منصوب کنی؟ اولی رو با از چرایی؟ چر میتونی مبلی برفتحش کنی میگی لا حوله چون لا لا نفیه اسمش نکره هست خب مبنی برفتح هست دومی رو که میتونی منصوب کنی؟ چون اولی محلن منصوبه درست اولی لفظا مبنی برفتحه هست ولی محلن چیه؟ منصوبه دومی رو میتونی اعراب محل اولی رو بدی یعنی ولی اولی رو نمیتونی منسوب کنی میگه پس ببین در این فائده این نقطه رو میگه میگه در غیر از ضرورت جایز نیست که اولی مرفوع باشه تو دومی رو بیا چیکار کنیم منسوب کنی علتش رو بیان کنه میگه این هم جایز نیست که هردو دو تا رو همزمان منسوب کنی میتونی اولی رو مبنی بر کنی دومی رو چیکار کنی منسوب ولی که هر تا رو منسوب کنی درست دو إن الفتح في هذه المسألة يكون على البناء مطلقاً فتح دادنش درين مسألة مطلقاً ما بليبر ما ااا مخاطر مبني بودانش مخاطر شيء شه؟ شو المبنى ما بين شيء شه؟ فاتر والرفق بعده يقول الأطفال على محل الله مع اسمها. الحالات داره توضیح میده ما چرا در این مسئله فتح می چرا رفش میکنیم این حالاتو داره توضیح میده میگه ان الفتح في هذه المساله يكون على البناء مطلقا فتح دادن در این مسئله یعنی در این تکرار الله بخاطر چیه بخاطر مبنی بودنش و الرفع بعده يكون الاطف على محل الله مع اسمها مرفو کردن دومی بخاطر چیه بگه به خاطر این که ما اینو عطف میدیم بر لا و اسمش نه فقط بر اسم لا بر چی؟ بر هم لا و هم که هر دوتا با هم چی هستند مرفوع محلن که هر دوتا با هم محلن چی هست؟ مرفوع محلن خب منصوب بودنش به خاطر چیه فست؟ بگه و با یکولو بالعطفی على محل اسم لا وحده منصوب بودنش هم به خاطر معتوف کردنش بر محل اسم لا ببینید اینجا بیایید برگردید موقعی که ما میگید لا حول ولا قوة الا بالله فتحش که دادید بگید به خاطر مبنی بودنش لا این به خاطر چش بود؟ خاطر مبنی بودنش زمانی که ما اومدیم گفتیم لا حول ولا قوة این رفعش به خاطر چیه؟ بگه به خاطر این که لا حوله لا و حوله هم محلن مرفوعن محلن چند؟ مبتدایه پس این قوتا محل اعراب محل اونا رو میتونیم بشمیدیم اعراب محل اونا رو میتونیم بشمیدیم منصوب مودنشو داره توضیح میده میگه چرا میتونیم منصوبش کنیم؟ میگه به خاطر این که لا حوله دروس ما برها فاته. ولي محلان دروس الله فزين بمبنى برهفاته ولل محلان كي محلان محسوبه ما لتجي ما ما في يمكن اسم الله ينفي الجنس اسم شروه محسوب يكون وخبر شروه معرفوه يكون تعال بس ينارد عشر توزي بذات خوب وأما الرفق الذي ليس بعد الفتح فيحمل على إلغاء لا لتكررها فيكون ما بعدها مبتدعا أو على إعمالها عمل ليس، فيكون مرفوعا بها لذا أما أل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله أل رفعك بعد از فتح نیست اون رفعی بعد از اینجا این رفع ما چطوری توجیه میکنیم دیگه این بله دیگه یک حمله بر این میشه که لا الگا شده لا چی شده الغا شده به خاطر تکرارش در نتیجه مابدش مبتدا هست مابدش چی هست؟ مبتلاي والمغتية مبتلاي <تصفيق> يعني كي يقول لا لا مبتئ لا بلغانيس منتهى لا يشبه بليسيه لا يشبهه بتيه بليس هذا ويحتمل أن يكون في ثاني المرفوعين بالعطف على أولهما دگوین احتمال دارد که در دومین مرفوع عطف بر اولی شده باشه عطف بر چی شده باشه و كل ما رفع او نصب با عطف مصاحبا لا مصاحبتی للمصاحبه زائده لتاكيد النافيه میگه هران چی که مرفوع شده یا منصوب شده با عطف که همراه با هست؟ با الله این لای مصاحبه زائده هم هست این برای تأکید چیه؟ بله این لای زائده داره چی رو تأکید میکنه؟ نفیش رو تأکید میکنه این شد از بحث لای نفی جرس